ما همه آدمیم و بهشت همین زندگی است و هر کس به ای که از میوه آن درخت ممنوع میخورد خود را بیشتر تبعیدی زمین و قریب زمانه میبیند همه چیز دارد به انسان منجر میشود تاریخ را مینگرم که در آن جویبارهای رنگارنگی از نقطه های دور از هم دیرتر و زودتر جریان یافتند و در طول قرنهای آشنا و ناشناس بر مسیرهای متفاوت و گاه متناقض پیش آمدند و اکنون همگی دارند در چشم من به هم نزدیک میشوند و شدتی عظیم را پدید میآورند و به یک دریا میریزند. برای دیدن برخی رنگها و فهمیدن بعضی حرفها از نگریستن و اندیشیدن کاری ساخته نیست باید از آنجا که نشسته این برخیزیم، قرارگاهمان را در جهان عوض کنیم، وحدت روح و فرم یک شهر را و نیز جهتی را که شهر به دانسو در حرکت است، از میان کوچه ها و خیابان ها و خانه ها نمیتوان دریافت. بحث از خیابان اصلی و پسکوچه فرعی بولوار اسفالته و بیست متری خاکی، بالاخانه و زیرزمینی عوض است. از نوع همان جنگ های هفتاد و ملت است فقط به درد کسانی می‌خورد که کم بود و حتی نبود شخصیت و پوکی روح و پوچی زندگی خیش را با تولا و تورا جبران می‌کنند. به هر حال کسی که به مکتبی که هست و آدمی که هست منصوب است، کسی می شود که هست چنان که مخالفت و مبارزه با فکری با شخصی که با وجودش بر روی اندیشه ها و احساس ها سنگینی دارد و حضورش در زمان احساس می شود یک هیچ را که هیچ قرینه دیگری بودنش را اثبات نمی کند چیزی می کند چقدر جوش و خروش ها و بحث ها و جدل ها و اثبات و انکار ها میبینی که ما این است که ای مردم ای زمانه ای خودم که حواستان جاهای دیگری است که از وجود من در این عالم بی خبرید من اینجایم. چیزی ظاهرا شبیه استدلال مزهک دکارت با اندکی تحریف که من مخالفت میکنم پس من هستم. و با جهتی معکوس عین سخن مشهور کامو که من اسیان میکنم پس من هستم. به این معنی که من اسیان میکنم تا من باشم. من با آنچه چه علیهش اسیان کردم کاری ندارم. نه دشمنی و نه دوستی آن را یا او را ندیدم نمی شناسم. اسیان من احتیاج وجودی خودم بوده است. اگر آنچه را با مخالفت با آن به دست آورده بودم با موافقتش بهتر به دست میآوردم چنین میکردم. من در دشمنی ها و دوستی هایم بیطرف و بیقرزم. کاری شبیه به آدم تنها و ترسویی که از تاریکی و خلبت کوچه هراسش حراسش برداشته است و آواز میخواند بلند می خندد. این خنده و آواز که از دل خوشش نیست ما همگی به سوی خدا باز می گردیم بنده من مرا پیروی کن تا همچون خیشت سازم من خواستم جانشینی در زمین خلق کنم آدم که ساخته و پرداخته شد من روح خیش را در او دمیدم انسان را خدا بر گونه خیش آفرید این سخنان همه گواهی میدهند که در انسان خدا نهفته است گل آن را فرو پوشیده است انسان یک موجود طبیعی است که روح الهی را در خیش پنهان دارد این تنها موجود سنبی هستی است خدا آگاهی و اراده و آفرینندگی مطلق است طبیعت نظامی فاقد مطلق اراده و احساس و ابدا و آدمی تنها موجودی نیمه خاک نیمه خدا و شگفتا جمع دو نقیز جمع دو مطلق، جمع دو بینهایت چه تعبیری بلیغتر از آنچه قرآن گفته است انسان روح خداوند و لجن رسوبی زمین یک عالم صغیر یعنی طبیعتی که در آن خدا هست و اکنون بر فراز مناره معبد خیش که از قلب تاریخ بشری سر است به تماشا می نگرم و به اعجاب می شنمم که به زبان کفر و دین شرک و توحید مادیت و معنویات فلسفه و حکمت، قدیم و جدید، شرق و غرب، عقل و اشراق، علم و ادب، مذهب و هنر، روانشناسی و عرفان، همه همین آیه را تفسیر می‌کنند. گیلگمش، قهرمان اساطیری سومر که هنوز از پس دیوار زمان فریادش به گوش می‌رسد و تنین دردش در قرون خالی و خاموش گذشته‌های دور و متروک می‌پیچد، این روح خداست که در کالبد سفالین او به سطوح آمده است هزار سال پس از او تغیان شاهین آسمان پروازی که نتوانستند در قفس تلاهی شاهی به آب و دانه و چراغها و کاغذهای رنگین سرگرمش کنند و در میان پردههای های خیالنگیز قصر ساکیا و جوش و خروش رقص و آواز و شراب و شهوت و طلا دغدغی را که در عمق فطرت او خانه دارد آرام کنند، او از آنچه به فرزندان طبیعت آرامش و اشباع می دهد برید تا به آرامشی در ورای آن رسد. و دوازده قرن پس از او در کویر سوخته و خلوت آن جزیره دروغین، باز آن روح را می بینم که از مدینه بی دردی که دل به جزیه و فیء و فتح و قارت و صدقات و شمشیرهای بران و حکومت‌های بصره و کوفه و مصر و خراسان و عراق خوش کرده است و در سعادت دنیا و آخرت غرق آرامش و لذت آرمیده است نیم شب گریخته است و در خلوت خاموش باغ‌های خرمای بیرون شهر در زیر محتابی که درد می‌بارد سر در حلقوم چاه فرو برده است و فریاد میکشد زندانی بزرگ خاک عظمتی که در زیستن نمی گنجد. دلی که جامعه تنگ و کوتاه بودن را بر اندام خیش می درد و سری که همچون استخانی های دریایی خشمگین و انفجارهای مهیب آتش فشانی دردناک را در خود می و چه رنجی رنجی که تا دم شمشیری کین توز آن قله مغرور را شکافت فریاد زد به خداوند گار کعبه رها شدم. و اکنون باور کنید ها شما را از فهمیدن و دیدن شباهتها باز ندارد و اکنون همین روح است که در انسان جدید اسیان کرده است. خواهید گفت آن اسیان کجا و این کجا؟ این را میدانم دیدن اختلاف این اسیان ها که تنها پک گشوده میخواهد در زیر این کسرت صورت وحدت جوهر را میخواهم نشان دهم تغیانون علی و تغیان کامو دو زندانی مجردی که از تاریکی و تنگنا به ستتوو آمدهاند آهنگ فرار دارند یکی به آنجا و دیگری به هر جا که اینجا نیست ایمان یا انکار مععدده آسمانی مسئله سابی است. این دو بر سر این جویی که لجن از آن میگذرد دست از خوردن باز داشتند. این دو پرنده با زاغ شادی که از بوی لجن مست شده است و منقارش را تا گردن در آن فرو برده است و عشق و کینش از لجن برمیخیزد و این را مخلب میکشد و آن را منقار تا حرسش را اشبا کند بیگانه اند با هم خیشاوند هم بودا زندگی را رنج، علی دنیا را پلید، سارتر طبیعت را بیمانی و بکت انتظار را پوچ و عبس یافتند. همهشان به روی یک قله رسیدند و از آنجا این جهان و حیات را می نگرند. هرچند فاصلهشان به دوری کفر و دین در آنچه هست، همگی پیروان یک امتند. امتی که خود را در این خاکستان اندک و زشت و بی غریب قریب میابند. امتی که آنچه هست را بیگانه اندک و زشت میابند در آنچه باید باشد نیز پیروان یک مذهبند مذهبی که اصولش است. حقیقت خوبی و زیبایی پس میبینید که چه پیوندهای مشترکی با هم دارند. پس اختلافشون در چیست؟ تنها در این که آنچه باید باشد هست یا نیست؟ چون که این رنگ از جهان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. همه از طبیعت به انسان از خیش زیستن، به چگونه زیستن، از سعادت به حیرت، از واقعیت به حقیقت، از بیرون به درون، از سیرابی به عتش، از یقین به تردید، از بسندگی به کم از علم به فلسفه، از تکنیک به احساس، از جبر به اسیان، از ماتریالیسم به ایدالیسم، از ابژکتیویسم به سوبژکتیویسم، از ایدولوژی به تحلیل، از ناتورالیسم ادبی به رئالیسم و از آن به سمبولیسم و رومانتیسم و از آن به سورئالیسم و از ما به من و از جمعیت به تنهایی و از هیستوریسم، سوسیولوژیسم، پسیکولوژیسم، دترمینیسم و آزادی، اراده و اسیان و بالاخره به اگزیستانسیالیسم میرسند. هگل انسان را به ایده مجرد اولیه و خداگاهی مطلق میرساند. نیچه به نیهیلیسم قاطع و عام که در آن هیچ نیست جز انسان و یاسپرس از علم که آدمی را از خود قافل می کند به خود رجعت می دهد و هایدگر از تمدن و زندگی که در پس آن انسان خاموش قربانی می شود و مسق و به شناخت خیش به وسیله خیش می خاند. علم حضوری و برکلی جهان خارج را نفی میکند که همه ساخته آدمی است و به نوعی سخن هگل را تکرار میکند که تنها معقول موجود است و سخن عرفان ما را که عالم و معلوم یکی و کامو جهان خارج را پوچستانی ابس میبیند و انسان را که در آن گناهکاریست بی گناه و تاون تا زده ای بی تخصیر و سارتر که جهان را هیچ در هیچ میداند و انسان را در آن غریبی که راه به جایی ندارد و به گفته هایدگر در این هستی پرتاب شده است و خود باید درد ناکانه و نومید برای خیشکاری کند و کافکا که به مسق میرسد و بکت که به انتظار بیهوده گدویی که نیست و یونسکو به کرگدن و الیوت که به ترزیا یک انسان خونسا هم مرد و هم زن و نه مرد و نه زن و بالاخره جامعه جدید که از اومانیسم علمی رنسانس به لیبرالیسم و دموکراسی شورانگیز قرن 17 و هجده و از آن به سیانتیسم و مکتبسازی فلسفی و ماتریالیسم و کمونیسم قرن نوزده و از آن به فاشیسم اوایل قرن 20 و از آن به آنارشیسم و استراب و اسیان و در هم ریختن همه چیز و همه چیز حال و حال نه دیگر دین و نه دیگر دنیا نه فلسفه و نه علم، نه راه و نه قانون، هیچ، نیهیلیسم، نیهیلیسم حیرت، تغیان، تنهایی جهان معنی ندارد، این نویسنده است که رفته رفته با عبور از واقعیتهای عینی جهان خارج بدان معنی میدهد این سخن ربگریه است که از زبان هنر جدید سخن میگوید و پیداست که هنر نیز در سیر به سوی پوچی جهان با فلسفه همگام شده است. انسان امروز ناگهان احساس کرده است که بسیاری از افسانه های خرافی حقیقت زندگی اوست. تصادفی نیست که فلسفه و ادبیات جدید با نگاه تازهی چهره قهرمانان و خدایان اساطیری را می بازگشت امروز هنر به اساطیر کهن بسیار پرمعنی و تعمل خیز است ناگهان کشف کرده است که پرومت خود است هر که به پیش آگاهی می رسد, هر که در خلقت انسان راستین سح دارد و هر که خطر می کند و تخت و بخت خیش را فدا می کند تا به شب و زمستان زندگی آتش هدیه کند سرنوشتی همانند او دارد تنهایی شکنجه اوست است و کرکس جگرخاره همدم او سرزمین دور و قربت وحشیان سکاها میهن او و کوهستان ابوس و سنگ قفقاز منزل او یک بار دیگر و اما به گونه دیگر پی برده است که زئوس بی رحم و دشمن انسان بر جهانش سلطنت دارد دردناکانه دریافته است که شکنجه سیزیف افسانه‌ای زندگی مکرر و سرانجام حقیقی اوست اوست که صخره بزرگ را با دست و پای بسته باید از پای کوه بر پشت خود بالا برد و به قله نرسیده از پشتش فرو می و باید فرو داید و باز آن بار سنگین را از پای کوه برگیرد و به سوی قله بکشاند و باز به قله نرسیده فرو غلطد و باز همچنین محکوم این تکرار مشقت بار و عبست چرا می آسایی؟ تا بتوانم کار کنم. چرا کار می کنی؟ تا بتوانم بی آسایم. تولید برای مصرف و مصرف برای تولید. انسان امروز چه می کند؟ این همه کار و رنج و تلاش آور برای چیست؟ برای تهیه وسایل آسایش. آسایش زندگی، فدای ساختن وسایل آسایش زندگی. و من نیز پی بردم که آدم چرا در بهشت اسیان کرد امروز این آدم های مرفعی که در بهشت زمین راحت و بی درد و برخوردار زندگی می کنند اسیان کردند و دانستم که آن گندم ممنوع میوه درخت خداگاهی و بینایی بوده است که امروز این انسان آگاه و بیناست که از بهشت آرام و سعادت رام طبیعت حبوت میکند. آنها که به آن میوه لب نزدند و یا تنها لبی تر کردند که همینجا هنوز در بهشتند هم هور دارند و هم قلمان و هم شراب و هم قصر و توباو و کوسر و نهرهای جاری و همه چیز آدمی که با صدور رتبه استادی از شوق و غرور ماهیتش ناگهان دگرگون می شود که نیازش به دوست داشتن تا آنجاست که چشم چرانی های عزب اغلی های اشباعش می کند در بهشت عدن مانده است این پیامبر مزامیر است که از بهشت آرام به این کبیر استراب افتاده است که در وسط زمین تنها و حیران می و دستهای یتیمش را به آسمان بر می دارد. و از هول و نیاز فریاد برمیدارد که من بر روی این زمین قریبم عوامر خویش را از من دریق مدار. ای که نمیدانم به چه نامت بخوانم مرا از این بی سیاه بران و آنکه به درد خبر میدهد که اشک که یک انسان در این گردونه مکرر کار ما ریخته است از آب همه اقیانوس بیشتر است و آن پیامبر بزرگ که در میاد آسمان با خدا دیدار کرده است در خلوت دردمند مهرابش به دعا و تضرع میخواهد که خدایا بر حیرت من بیفزای و آن شاعر رنجوری که سراسیمه و بیپناه آواره در زمین و نگران آسمان فریاد میزند به کجای این شب تیر بیاویزم قبای جنده خود را من آنه خشکم که بر لب‌های نوازشگر ناپیدای تو که قصه فراغ را در من مینوازی به قربت خیش پی بردم و اکنون نه در این عالم که در خیشتن قرار ندارم و نه در زیستن که در بودن خیش نمی گنجم که جامعه تنگ خیشتنم و کاش یک نادانی شومی تا از خیش خلاصی یافتمی اما اما آیا کسی هست که رنج وحشتناک و دلحر آمیز رهایی را بفهمد آه خدایا شور و شیرینی پیروزی و اقتدار آزاد شدن بندهای تقدیرهای ناخداگاهی را بریدن چه زود هراسنگیز می شود. در آن لحظه که در دامن آرام و آسوده این جهالتهای چهارگونه بیدار می و چشم می صحرای صحرای بی بیکرانه رهایی چه استراباور است. قناری تنهایی که از کودکی در قفسش کرده اند همواره در شوق رهایی میخاند و مینالد و خود را به در و دیوار میزند و بالهای ظریفش را چندان به میله های زندانش میکوبد که مجروح و خونالود میشود اما هنگامی که آزاد میشود تنهایی در رهایی رهایی در این دنیای پهناور کجا بروم چه کنم چه سخت است توانستن در ندانستن رهایی برای آن که آشیانی ندارد آزادی برای آن که چگونه باید باشد کشنده است جبر و قید او را از شکنجه نمیدانم چ چکنم نجات می داد. در این حال روح آرزو می کند که دستهای نیرومندی او را در چنگ خیش گیرد و سرنبشتی را بر او تحمیل کند روح آواره در جستجوی کسی است که او را پناه دهد اختیار مطلق برای کسی که نمیداند چرا اختیار کند شکنجاور است همچو کپکیم در بلایت خیش مانده در جستجوی بازانیم آفرین اشپنگلر همیشه من با خود در ستیزم که تو را نپذیرم اما هرگاه که منطقم لحظه‌ای غفلت کرده است دیدم که دلم خود را پاک تسلیم تو کرده است و پنهان از چشم آقایم افسون سخنان سهرامیز و ابسونگر تو شده است در آرامش مغرب گلها را بنگرید که با غروب آفتاب چگونه یکی پس از دیگری چشمهای خود را فرو میبندد در این لحظات احساس مرموزی در شما بیدار می‌شود. احساس حراس اسرارآمیزی در برابر افسانهٔ وجود و رؤیای زندگی بر روی زمین جنگل خاموش و مرغزار آرام این بوته و آن شاخه هیچ یک از خود جنبشی ندارد دست ناپیدای باد است که آنها را به بازی می گیرد. تنها آن پروانه است که رهاست و همچنان در دامن شامگاهان می و هر جا که بخواهد می رود گیاه نباتی بیش نیست حیوان هم گیاهی است به علاوه چیزی دیگر گلهی که در لحظه خطر بر خود لرزند و به هم پناه می آورند تفلی که گریان سراسیمه به دامان مادر خیش میچسبد و انسانی که در پریشانی یعص میکوشد تا به خدای خیش راه جوید همه در جستجوی آنند که از زندگی و آزادی به بردگی نباتی خیش که از آن به تنهایی و یکتایی رها شده بودند بازگشت سر گذشته غ است در حیات آدمی بیتابی فرار از بند به سوی رهایی و استراب نجات از رهایی استراب و آرزوی رهایی از رنج رهایی روح را همواره پریشان و سراسیمه می دارد. ملای روم استرااب آزادی و سنگینی گنگ بار مسئولیت را در روح این پروانه که تا شامگاهان سراسیمه پرواز می کند و بر کرانه مغرب همچنان آواره می نشان میدهد. و نشان میدهد که چگونه مستی شراب از آن روی که احساس رهایی و مسئولیت دلهور آور را در درون آدمی برای ساعاتی کور می روح را آرامشی می بخشد شبیه آنچه یک روح به خود در پناه یک تسلیم در دستهای حاکم یک جبر دلخواه می جوید. انسان فواره است که از قلب زمین اسیان می کند و در این جستن شتابان و شورنگیزش هرچه بیشتر اوج میگیرد بیشتر پریشان و تردید زده می شود. اندک اندک حیجانش آرام میگیرد و میل به بازگشت او را در انتهای راه انهنایی میافکند که هم صعود است و هم رجعت فرار و بازگشت با هم در ستیزند به آخرین قله رهایی که میرسد ناگهان احساس میکند که در فضا معلق مانده است در برزخ میان زمین و آسمان بلا تکلیف و بیپناه پناه نمیداند چه کند از آنجا افق تا افق جهان را مینگرد که صحرای خلوت و بیابان حیرت است از رهایی این چونین بی سر انجام ناگهان میگریزد و به آغوش خیشاوندش زادگاه نخستینش باز میگردد. و سر را از هراس تنها ماندن در چین و شکن‌های گیسوان مواج آب فرو میبرد و در عمق زمردین استخر زلال خیش پنهان میسازد و با نفی خیش در پیش چشمان آزاردهنده تنهایی در آغوش وسال خیشاوندی بودن خیش را ایمان و آرامش میبخشد خیشتن خالی و ناپایدار و لرزانش را از بودن لبریز میکند درونش از وجود موج میزند چه زیبا و عمیق است این دیالکتیک صوفیانه وحدت وجود در فرهنگ سرشار شرق در فنای خیش بقا یافتن روح که همه پیوندهای خیش را با جهان و زمان گسه است، به آزادی مطلق میرسد اختیار در او به کمال خیش میرسد و آنگاه به اصطلاح اریک فروم گریز از آزادی عشق پیوند را در او بیدار می کند و آنگاه که رهایی به اوج خیش رسید اختیار تمامیت خیش را یافت و مسئولیت خیش تمامی به خود خیش واگذار شد آغ خدا آق طبیعت، بی پناه، بی پیبند، بی راه، بی تکلیف. آنگاه دیگر هیچکس او را نخواهد بخشید خود را دستی میبیند که گل خیش را به او واگذاشتند تا خود بسازد هیچکس نمیگوید چگونه خود را معماری میابد که بنای عالم را به او واگذاشتند هیچ کس یاریش نمیدهد هر لحظه از زمان گذر خیش را از او می پرسد. هر ذره از وجود بودن خیش را از او می خواهد او برای هر دمی که برمی آورد باید تصمیم بگیرد باید تعیین کند رسالت خدا بر دوشهای ناتوان یک انسان تنها آرزو می کند که لحظه بیاساید دمی چشمهایش را بر این صحرای حیرت ببندد ساعتی دندان قفلت برجگر جگر نهد چقدر حسرت آن را دارد که در بند تکلیفی از این دغدغه استراب‌آور رهایی رها گردد احساس کند که در اینجا او نیست که باید انتخاب کند یا باید شراب فراموشیاش دهد یا در اسارت عشقی از رهایی رها شود یا از وحشت رهایی در حیرت به درون خیش بگریزد و خود را به انواج شوقی که به سوی مرزهای ناپیدای قیب روانند به سفارت و یا دل به پیام رسولی که از آنجا خبر آورده است یا به فریب هنر جهانی بر انگاری آنجا که باید باشد و نیست بیافریند و در آن آرام گیرد و اگر نه عشق به کمندش آورد و نه ارفان راهش نمود و نه پیامی را باور کرد و نه هنر فریبش داد باید یا شراب فراموشی دهد و یا انتهار خلاصیش بخشد که تنها مایه سعادتی که آدمی را می تواند در این دور باطل روزمرگی بر سر این سفره سیر و سیراب سازد و خوشبخت تنها و تنها حماقت است و دریقا که حماقت نیز موهبتی است خدادادی که بسالش نه نبه کوشش دهند چه آدمی میتواند خود را بکشد اما نمیتواند تصمیم بگیرد که فقط به اندازهای که مصلحت است بفهمد و اینجاست که پگی آسان از رنج جهانی که در زیر نگاه های خشک علم زیبایی و آشناییش را از دست داده است و بیزار از زندگی بی حلاوت و تمدن بی که علم عددبین و عقل مسلحت اندیش که جز نمودها را نمیفهمند و جز به رابطه ها کاری ندارد و احساس مرموز و ماورا اقلی آدمی را میخواهد در بند علت و معلول منطق سوری و بی اسیر سازد فریاد میزند بیایید به کودکی بازگردیم